این گنبد لاجبردی و زرین تشت بسیار بگشت است و دیگر خواهد گشت. یک چند اقتضای دوران غذا ما نیز چو دیگران رسیدیم و گذشت. دارنده چو ترکیب تباع آراست از بحر چه او پکندشندر در و کاست. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود و نیک نیامد این صور عیب که راست. با دشمن و دوست فعل نیکو کوست بد کی کندان آنکه نیکیش عادت خوست با دوست چو بد کنی شود دشمن تو با دشمن اگر نیک کنی گردد دوست در چشم محققان چه زیبا و چه زشت منزلگه عاشقان چه دوزخ چه بهشت پوشیدن بیدلان چه اطلس چه پلاس زیر سر عاشقان چه بالین چه خشت